أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله محمد على محمد واله الصديقين أخيرا عظيم اللهم جميع برحمتك يا أرحم الراحمين بحث درباره حدیث اول قاسم سیغل بود در باب بی امیته و ابتداعا فکر احادیث دیگه هم داریم در بی امیته حالا اونا نخونیم فعلاً این اولی رو بخونیم تا به این بریه رو و یه مقدار کلمات اصحاب راجع به این حدیث مثلا معاصرین و ارز مشهور مشهوره بین اصحاب هم ضعف حدیث است به خاطر این که اول قاسم سیقر شناخته نشده مجبوله یا به اصطلاح برزی و محمد و خوندیم جهاتی رو که متعرض مربوطه این بود و گفتیم خود ما بارداره بحث بشیم ببینیم که اوضاع چی این حدیث رو مرحوم سال سال در جلد تاک مرحوم ربانی در جلد دوازده که مکاسبه صفحه 125 و, و این حدیث اساساً مسترش در کتاب تحریب شیخ عدس الله سر رهد مرحوم شیخ هم منفردان این حدیث رو نعال کرده از کتاب سفار ابتدا فرموندن به اسم سفار محمد الحسن سفار فرس کردیم از بزرگان اصحاب و ایشون هم از اون بزرگان است که در به اصطلاح اون زمان دوره فقهی داشته‌اند. در ما حالا میگیم دوره فقه از طرف سال‌های عملی مثلا می‌گه فلان کتاب مثلا فرض کنید. تحریر الوسیله مثلا یه دوره فقهی، اما منهاج الصالحین مثلا یه دوره نیست، اصلاً. یا یه آره دوره نیست. مرحوم صفاری دوره فقهی داشتن تا این کتاب‌های در طلاق و صفاتون در نکاح در بی شرای الاخری و در اون زمان چون مرحوم حسین سعید قدس الله نفسه در در ایشان حسین سعید یه دوره فقهی رو در سی جلد در 3 عنوان نوشتن مشهور شد در کتب سلاسی این کتب سلاسی کنایه بود از یه دوره فقهی در بعضی از افاضیه هم ما در صفار اس سه اصحاب ما دارین مثلا له کتب مثل کتب سلاسی مثل کتب حسین سئید عدد واظیم دوره کامل داره مثلا مثل کتب سلاسی سلاسی حسین سئید صفار از است که دوره فقهی داره مثلا له اناسه و در, در وثاقت و جلالت ایشان جای بحث چی نیست و حتی های علمی ایشان هم ندیه و دیگه من الان متعرض ایشان نمیشم نکات درباره ایشان هست این خلاصه چیز دیگه چیزی که درباره ایشان باید آقایان فعلا عنایت بکنن که ما هنوز هم برای ما خیلی روشن نیست نسبت اون چی که الان از صفار به ما رسیده معظمش تری به شیخ امس... توسیه یعنی خیلی از روایات منفردن شیخ توصی نرو کرده مرحوم کلی نرو نکرده نه اگر کلی نکرده در غیر صفارو سادیو هم خب کم نرو ما نمی‌دونیم چرا علایم شما بدانید هر حدیثی رو که شما دیدید در اولش سفار بود دیگه بالای 90 درصدش از منفردات شیخ توسیست ایره شیخ توسی اون رو نقل نکرده اگر هم نقل کرده باشه یا از نستر دیگریست به دی نسبتی هم لا لابت مرمون صدوق نقل کرده اما کلینی خیلی کم کرده. نمیدونم علاقی هم همونز بر این کار نفهمیدیم نه اینکه کارو مثلا درباره آثار سفار شبهی باشه مرحوم سفار در این حال از بزرگان اصحاب قوم ماست از قومی هاست حفظ کردم من سابقا توضیحش دادم حالا اجمالش میگم اینشالا جاهایی که آثار داره توضیح بیشترش میدم ببینید در فقه شیعه در حدیث ما در میراز های ما اگر بخواهید خوب بگه احاته کامل بکنید ارتباط میراث رو با اون شهرها و با های فرهنگی حفظ بکنید اساسا ما یه آثاری در خط کوفه داریم، یه آثار بغدادی داریم، یا آثار قومی داریم، یا آثار خراسانیه مثل نیشابور آثار فضل داریم یا اون آخر خراسان مثل کشی سالاب کشی و در عیاشی داریم. این های ما به ده‌هاز ارتباط با شهرها یه میرد که با هم فرق می‌کنند. و این است که الان نوشته نشده، یعنی الان شما در رجال هم شروع اینها رو دارن از خودمون مثل اعداد کوفی، این ادادو. لیکن در کتاب های علمی ما این بحث مطرح نشده و این ارتباط خیلی خوبه یعنی ما باید اصولاً میراز های رو با ارتباط شهری چون با حسب ارتباط شهری که پیدا میکنه تاریخش تدوینش تصیحش آیا نسخه صحیحه صحیح نیست دست دوست دست دوست، دست دوست، به لحاظ شهر خرم میکنه و شهرهای عمده ای که ما الان در میراز های ما داریم در در است، خیلی مختصر مکه هست و به اصطلاح مصره که خیلی مختصره مسمتا مختصره بقابل اعتماد مطلقم نیست یعنی اشکالاتو داره و قم هست و احواز هست و نیشابور و کشف و سمغن البته یه آسای از اسفحان و غیره داریم اما عمده از آذربایجان در اون سمندر اینا وکن عمده آسار ما اینها هستند هستن این ارتباط شهری خیلی مهمه این اثر مرحوم شیخ کتاب تهذیب چون این حدیثو تنها شیخ آورده مرحوم نجاشی نه آورده مرحوم شیخ کلینی نه مرحوم شیخ صدوب هم نه آورده مرحوم شیخ در بغداد آورده شیخ هم از آثار قوم گرفته در از می‌برم از آثار قومی ها این کتاب صفار کتاب صفار هم عرض کردم اینو انفراد درش هست پس این انفراد ها به نظر ما موزر نیست ان در جر... در بحث دیگه من چون این بحثا تا حالا شاید به گوش خیلی آر نخورد فعلا در حد یک نوع تحریک احساسی مطرح میکنم و تفاصیلش و خصوصیاتش رو بعد یواشواش در طی بحث ها و در طی جلسه نمیارم این تفاصيل رو مرحوم شیخ طوسی از مرحوم صفار یعنی از آثار قوم مرحوم هستند مرحوم هم از محمد ابن عیسی ابن بغدادی از ایشان بردادیم. هم محمد ایسر می اوبیدت می یکتین من سابقا عرض کردم در یکی از چهره های بسیار معروف و از دعات و از به اصطلاح متحرکین و با نشانت های سیاسی در زمان بنی عباس شخصی به نام یکتینه ایشون از دعات بنی عباسه و برای به اصطلاح کارهای سازموندهی کار بنی عباس رو وارد فاز نظامی شدن حتی در عزتش بولشوی در مکه اون خودش از خراسان یکی از ارکان نظام بنی عباس یختینه و یک تیم ولو خودش از بنی عباس و از اون های بنی عباس ایده از بچه هاش به خلاف اصطلاح انظما ضد سلطه شدن یا اصطلاح انظما رجما ضد انقلابمون وقتی انقلاب نبود ضد دستاشکی شام علی بن یختین معروف با اینکه یختین که پدر بود از دوات بزرگ بنی عباس بود که از دعات بزرگ مخالفی بنی عباس بود که حضرت موسیقی جنفر سلام الله علیه و بعد هم ترسال تو خب خیلی هارون پیگیری میکنه خب برای هارون هم سخت بود کسی در حد وزیر و از نزدیک افراد بو باشه و پدرش هم از دوات بنی عباس باشه اما بچه جزو مخالفی باشه و با امام کازم علیه السلام ارتباط مستقیم داشته باشه حضرت بعدها در زمان از رضا حوال امام از رزا یختین در این علی ابن یختین توسط هارو به شهادت میده است قدس الله همه است علایان از یختین اده از فرزندان و نواهای ایشان از موالین اهل بیت و از بزرگان ما هستن یکیش خود همین علیه پسر علی هم به نام حسن ابن و حسین ابن یختین احتمالا برادر علی که عبید هم باشه او هم ظاهرا به احتمال بسیار قبیه می چون قبیل چون عبارت هست که ایشون از مبالینه اما اونقدر چون آثار نداریم نظام یه به احتمال قبیل به هر حال بحثای رجالی رو در جای دیگه با دنچون بدید یه تراجم رو یکی هم عبیده و این عبید نوی داره به نام ابو جعفر محمد پسر ایسا پسر عبید پسر یختین معروف بوده نام عبی جعفر محمد ابن ایسا ال هم بهش میگفتن ال عبیدی هم بهش میگفتن. عبیدی نسبت به جدش که اسمش عبیده عبیده نیختی ایشان از علمای بغداده البته شخصیت مثلتا است، عده از بزرگانشون قبول داشتن و عده هم مخصوصاً قومی ها و خط معینی در قوم ایشان رو قبول نداشت ما الان در روبات ایشان بیشتر شهرهای قومی میدونیم و چون خیلی برای ما واضح نیست حلقی اینها در بغداد این قسمت در کتابر جان نیامده من احتمال قوی میدن ایشون سفری به قوم آمده قوم برای آمده و علمای قوم از راه ایشان تحمل حدیث کرده البته ایشان اجمالا شهره بسیار معروفی بوده در جلالت شعن ایشان بحث نبوده در بعضی از های علمی ایشان بحث بوده من اگر اول گفتم اختلاف بوده مرادم گیره اینه با دوبار سریع باید. در اول درست میده مخصوصا ایشان ای که از کسانی روزه که کتب یونوس ع قومی ها رو این میراث اشکال داشتن به مثلا اینجا ملازمه از محمد بن ایسا نرم میکنن اما وقتی میامده یه خطه از قوم وقتی میگفته محمد بن ایسا این یونس رو دیگه قبول نمیکنه یکی از جنگرال های معروف علمی اون زمان این بوده الله تعالی اگر توفیقی شد چون این مطالب باز به این صورت که من عرض میکنم طرح نشده اینشالله تعالی ریشه ها چون خصوصی ها فیلن چون از یونوسی نیست خیلی درده سر نداره حالا یه حال روایت ابتدائم در یکی از مسادر بسیار مهم نقومی ها و یکی از شخصیت های بزرگ قوم مرهون و صفار و احتمالا ایشان آثار این ای رو نقوم کردن خب تا اینجا هم شرحه بدونید من همیشه عرض کردم حالا اجمال عرض می کنم. ما یه شرح تاریخی برای حدیث نقوم می یه بحث حجیت برای حدیث نقوم آیون اصولی‌ها بیشتر به حجیت رفتن ما یه با همدیگه دیگه کار می‌کنه کردی محمد بن ایسا کتابی به نام توقیعات داشته و من در جایی دیدم که هنوزم باز پیداش نکردم <تصفح> کتابی به نام مسائل و رجال لا حسن ثالث داشته استفساات نسی که کردن جوال استفساات جوال استفا که اشخاص از حضرت هادی علیه السلام کردهن ایشون جواب‌دهی کرده احتمالاً میاد همون کتابی از توقیعات به تعبیره مرحوم نجاشی و با این تاریخ روشن شد که اگر استفتاءات باشه اون افرادی که سوال میکنن غالبا هم مجهولن الان هم شما استفتاءاتی رو خونه‌ای که از مراجع جنب بکنید سائل نمیشناسید یکی از یزنوی که از اسفارنوی شیک است ثمیرت این و استفتاءات این دید بحثی رو که الان آیان مطرح کردن که اول قاسم سیقل مجهوله این جور ها ما مفصل دیگه توضیح دادیم یاد نمیخواد این جور جهالت ها در باب حدیث مضر نیست طبیعت کار چقدر این جور جهالت است حالا سعی می‌کنم خودم را جبری نمی‌دونم این مستثنی کیه فلانی از یغمورن نمی‌شناسن ما هم نمی‌وجود خود اونها نمی‌شناسن یه فرد عادی لذا این جور این مطلب رو هم از من مفصل از کردم از اولین کسی که بیم یه مقدار پیدا کرده که این جهالت مضر نیست مرحوم استاد در مکاسب محرمه ایشان در اونجا نویشتن این که خب این مثلا خود محمد میرسا که بزرگاه بوده اطلاع پیدا کرده و جهالت مثل اول قاسه ما این رو توضیح داریم مفسره در یک جلسه ای که این میویسند این کسی که این استفتاعت جمع میکنه باز احوال داره یه دفعه وکیل مثل حسین سعید دفعه وکیل نیست اگر وکیل نیست یه دفعه از بزرگان مثل همین مرحوم محمد افنی از بزرگان نیست اینا با همدیگه فهم میکنیم یه روایت از قبل قاسم داریم از عن الرزاق علیه السلام اون ناقلش خودش چیزی بزرگ نیست این دو تراویق با همدیگه فرقشون اینه این به ناقل از قبل قاسم از بزرگانه اونی که از بزرگان نیست وقتیم باز مختلف یک کتاب و قرائتال جواب خاطری که قرائتال جواب پیش از کلی شواهد و عرفی باید اقامه کرد در این مقدار و این کلمی میبرداره وصول و اطمینان ما به حدیث چیه؟ خب انصافا مرحوم شیق تلسی از کتاب صفار از محمد ابن که از بزرگان از خوابه انصافا وصوق یعنی بد نیست و دیالا به اول قاسم سیقل بشناسیم یا نشناسیم خیلی مهم نیست از که این توجه که خبر داریم مرحوم آقای توستری هست به احترام رأی ایشان احتمال بدن که این اول قاسم سیقل همون مخلد ابن موسای رازی باشه تن در یک حدیث دیگه که با هم محمد بن عیسا نقل کرده نوشته انا عبد مخ... سیغل نداره نظره انا ابرقاسم مخلد بن موسی راضی من جای دیگه نریدم تا اونجا یکی که توه رجال کیده مثلا مرحوم اوصاد دیدم مرحوم آیت الله منم خیلی به جان نگاه کردم من نریدم من علامت نمیذاستم مرحوم آیت احتمال دادن که اول قاسم سیقل همین مخلد بن موسی راضی باشه بله انصافاً خیر الان جلب به این اتحاد نمیشه پیدا کرد حرف بدی نیست پس نتیجهش این میشه که مرحوم با... نه علی محمد بن عیسای ابی الی معلوم میشه این استسااعات رو از جهات مختلف جمع کرده این جمله از ری این اون وقت اون نامه رو نوشته کتمو ال رجل که ارشدیم باعث از نظر رضا بشه توضیحش بدهش این به نظر من هست حدیث که همین روایت مفصلی که خوندیم حالا چون الان میخوام بحثیل صندلی و مطرری بکنم فعلا مصو دیگه میکن. وقت در آخرش داره و کتب تو الی جئل تو فدار و قووا مسیف حتی تو سه از سفر ازصففرق من جلود سمک فهلی جوز و حالی یه جذا عملی عمله ها و ثنا کل به ها فقطکت بهعلله سلام دابحصله دو تا سوال داری یک سال بهتر است که حالا بعد میکننیه سوال هم معلوم میشه که دسته شمشیر رو از یک نوع های بسیار قوی چون سفر, سفر به تنسا هم تفسیر شده به بعضی از ماهی هایی که پوست های خشن دارن به اونم تفسیر شده چند جور تفسیر شده سفر ظاهرا یک نوع ماهی بوده که حالا که لیزی هم داشته اما خشن بوده مثل این پوست ماهی متعارف نبوده که ما از او دسته شمشیر میتاختن یعنی حاصل راجع به میته ماهی هم سوال میکنه یک سوال راج میته حیوانات برریز یک سوال راژع به مته حیوانات بهری میگه ما بوش شده بحث بوش نیست فقط امتفاع ما میتون اشکال نداره این یکی اشکال اون که حرام میته حیوانات برری این یکی کز اشکال دا. این زیل و ک تو این زیل در, در کتاب کافی هم همین زیلی کلام هم برای شما خوندن به این صدر نیست ها؟ اونی که الان ما در بحث میت فقها ها آوردند و روش خیلی بحث کردند و اخذارد به که نه اون صدره اما صدر از منفردات شیخ توسیست اما زیل در کتاب کافی هست مرحوم کافی در کتاب معیش است در عبور اگر آن میخواد مراجعه رو کنیم جند پنجوم. صفحه 227 یه بابی قرار دادن بابون جام اون فی مایاجوز بیع و بی او و او زیر اونجا آورده و اونجا هم این رو از محمد بن یحیی استادی ایشان که صاحب تألیفان از طلاب جامع داشتن در فیلم بسیار بزرگ بزرگوار محمد بن یحیی عطار از احمد بن محمد که مراد اشعری ایشون از بزرگان قومه خود کلینی هم که در قم بوده یاره یا در قم بوده تا اینجا حدیث قومیه محمد بن یحیق قومیه هم احمد محمد هم محمد بن ایساب ابن اوهی از اینجا با سند سفار مشترک میشه این همین زید در کتاب کافی به این سند آمده اما از سفار نیست من اول بحث یادو ماردون باشه از که ادم روایتش رو کلینی آورده از راه نیست از راه سفار از منطردات شیخه اما همین ببایت رو مرحوم کلیدی فرد رو ذکر نکرد مرحوم کلیدی حالا یا واقعا انتخاب بوده یا اعتقاد بود نداشته یا احتیاج بود نمی‌دونیم حالا ما اون سر را مطلب رو الان نمی‌دونیم مرحوم کلیدی فرد رو زیک ذکر. ذکر نکرد روشن شد پس برگشت هر دو مصدر پس از دو کتاب از دو راه راه احمد بن محمد بن و راه محمد بن حسن صفار برمیگردن به محمد بن یسا یختینی که از کارم یک کتاب توقعات یا مسائل رجال الا اول حسن سالات این تا اینجا هم لكن چون سند یکی احتمال میدیم که بوده اون چه که الان ما مشکل داریم این حد مشکل این رو من الان استقاب تحضیب برای شما خوندن در جلد شیش تحضیب صفحه 376 جلد شیش تحضیب اون چه که الان منشع مشکل شده همین به تنهایی خوب در قدر همین زیدی که الان گفتم در یک جای دیگه در صفحه 371 که همین جلده شیش مرحوم شیخ توصی، این سند رو هم باز از منتردات شیخ توسی جای دیگه نداریم این هم باده مشکلی دیگه شیخ توسی اینجور نهار کرده احمد ابن و محمد ابن ایسا ان ابل قاسم سیغر قاله و کتم تو اله قواه مصیب همون زید صد رو نداره مشکلی که لن اینجا فیدا شده محمد ابن عیسی واسطه نیست در اینجا اون یخی نه یخی در اینجا واسطه نید اوچن شد موشه؟ چون همین ذیلم تنهایی در کتاب کافی آمده همین احمد ابن محمد ابن عیسی هست از محمد ابن عیسی انعبل قاسم اینجا هم احمد ابن عیسی افتدا کرده به اسم احمد ابن عامل کلیلی یه قاعده هم بین مشهور مشروعه که شیخ توسی هر وقت به اسم شخصی. در کتاب تحرییر یا افتضاح و بکنه از کتاب ولوجیر گرفته پس معلوم میشه که اینجا مشکل یک این مشکل دیگه پیدا شده. معلوم میشه در کتاب احمد محمد میگی سه دو جور بوده. یک نسخه در اختیار کلینی بوده ان محمد بن ایسل ابی ان آن ابو القاسم. یک نسخه در اختیار شیخ توسی بوده مستقیم ان ابو القاسم. اون رو نداره. از کل این حدیث. چون الان چه مشکل داشته باشه نداشته باشه مکرره میشه مشکلش هرکت چه بگیم حالا اون جهالتش موثر یا نه لیکن من این قوائق رو از چون در صده ها حدیث را درد شما میکنه این محصر شما ماستی؟ همون همیشگی یا آخون بیار باز مطرح شده که حالا اینجا چه کار بکنیم روشن شد یک حدیث واحد اون ذهل مشترک دیگه در تابیه در کافی، آن احمد دبنا محمد ابن ایساق، آن لعوبیدی، آن قبل قاسم است. اما در تجزیه آمده نه، احمد ابن محمد ابن ایزان قبل قاسم، عوبیدی نیست. دیگه گازه که آقایان شروع می‌کنن به اینکه که اینجا سخت شده، در مسیح شیخ سخت شده، آن لعوبیدی سخت شده. یا اش احتمالاً اینطوری بوده، مثلا احمد ابن محمد، آن محمد ابن ایساق، آن یا احتمالا اینجوری بوده احمد یا نه احمد ابن, احمد. احمد ان محمد ابن ایسا اینه که الان آمده احمد ابن محمد ابن ایسا درست نیست چرا؟ چون همین سند و همین مصد و همین روایت در کتاب کافی اونطوری آمده روشن شد؟ سلامت لفت و من از نظر تاریخی سابقا چون گفتم اونو زیاد میرم به از داران جدیب تشویر نیست ما بعد از بحث های رجالی ما از اول نبوده این اشتباه نشون مثلا بحث تقییم حدیث که مثلا رب از شیخ صحیح هم یا رب از صدوق صحیح هم این برای اولین بار در میراس های ما از دمان علاقه اصلا اشتباه نشون یعنی <تصفيق> شیخ این در قرن پنجم کتابش نوشته شیخ صدوق در قرن چهارم نوشته یا کلیمی اول قرن چهارم درکه این اصطلاحی که الان ما داریم این اولین بار در های ما در قرن هفتون و هشتونه هم. علامه علامه او روز خودش میسه مختلف برایده روش شیخ صحیحن به صدن سرد. یه اول اینجا رو روش صدوق به صدن سهی سرد. در میکنیم بعد از اون دیگه به اصحاب ما جا افتاد ماشین یه برسی دیگه ما الان میکنیم مثل همین مقارنات سندی الان دیدیم چطور مقارنات کردیم؟ یا مق نوشته شیخ رو در تهذیب رواش شیخ رو بارهwayat کلیلی در کافی یا بارهwayat صدور در تغی مقایسه میکنید سنداً و متن را میکنی تموزیاد تموزیات داره و نسخه این کارها تقریبا میشه گفت اوائلش توسط مثل شهید سانی و اینها ساوا اشتباه نشه مثلا شیعه رسانی در دراستال حدیثش که چاف شده ایشون میگه شیخ توصی در تحضیر خیلی جاها نقلش با کافی نمیساد زیاد و نقیسه داره تقدر که اما براتون نسال هم زدم میگیم در این روایت در سند البته در مرد بین کافی و بین تحضیر اختلاف هست با این سند یکی احمد محمد بی ایسا یکی ای حض شده این از قرن دهان در روایات رو سنیا از فن قرم سبون کارشون کردن مقابل متول مقابله اسانی کمها زیادها این پیشونا خیلی شده بود بین اصحاب مالون نقصی دیگری کاره اینشارا با توضیحاتش با جدگرد بکنم این مقابلات و دقتها بیشتر از زمان مثل شهید سانی مفرح شده دقیقی بعد بچی این مطلب مطرح شد یواشواش شواش گنده شد این خب علماونه ای بابا خیلی بین تهذیب و کافی تهذیب و فریح اشکال پیدا میشه و من چند دفعه عرض کردم همین بحثا رو بحث, بحث عربی که جریان هستن تو این بحث فارسی عرض کردم کار به اونجا رسید که مرحوم صاحب جواهر و حداعق که اخباری مستاگر هست چندین بار شد من چندین بار شد پنج 5 بار خود من دیدم مرحوم واسط هم در اول معجم موجب. اسم بعضی‌هاش صفحه دادن من میترونم که مرحوم صاحب هداره دیگه انصافاً از حد متعارف خاشتن فرموندن قلماتو جد روایتون انده شیخ سلامت او سلامت من از زیادت او نقیصه او تحریف او تصیف سندن او متنن هم به خیلی ایشان که اصلا ما کم داریم رویتونی شیخ هم خراب نگرده این متنجی که لقرن ده هم شروع شد مثل بعد ها، این صورت تو استادم و سره ایشون هر تری گفت این ددر نیست و چون شیخ مرجعیت داشته کتاب و قبل از مرجعیتش طلبه بود شیخ وقتی کتاب سال شده مرجعیت هم بر حال اشتغالات شیخ زیاد بود تالیفات شیخ لذا شیخ دقیق نبوده در داشته این هم نیست ما در حدود 20 سال قبل که این کتاب درایچافورد یه حاشیه‌ای زدم در حمور جواب مرحوم سید ساجی بدم و این در خلال بحث‌وارنده ما تفاصیل بیشتری از در ذیل همین حدیث معجم استاد ملاحظه اینشون هم اشکال داره. ذیل همین حدیث که ظاهراً سحر شده و صحیحش محمد بن عیسی در وسط وارد باشه. این اشکال آقای. روشن شد ان جواب به نظر ما اینطور نیست تبریکات به شما. صادق بدای که خیلی تونم رفته خدا نکنه. کنه هر این حرف باشه این سمعه مثلا الان که در مصادر ما دارن حمله میکنن اینا بیا نقل بکشن ابوری طاهرون که شیخ طاهر میتونه حدیث نره. خیلی مصیبت برای طاهر که مثلا سندا من مثلا حدیث درست نکنه. این بذایاد کاری بچه تلفیق که جامعه دواز میگه خود طاهر باشه. اگر این شواهدش بوده که مطلب اینطور نیست و شیخ کاملا دقیق و اصلا اشتباهی خود ممکن صوبي مطلب نیست این شب که تو نگاهش کم زیاد داریم این یه چیز طبیعیه که مشکلی نداره ما اصحابین ظاهرا مرحوم شیخ بعد از نوشتن این کتب چون خیلی تالیفات ایشون زیاده و تمام تالیفات در بغداد است حدود 12 سال ایشان در نجف ساکن شده که تشرف یعنی نجف چون چه هرگز شهر همزمان در اون وقت ظاهرا ایشون تالیف نذاشت من احتمال بسیار قوی می‌بینم که نوشتار شیخ در حد مسوده باقی مونده بوده. خود شیخ نتونستن دفعه دوم و سوم انجام بده بشه این احتمال قوی پیش میاد. علیه حال و معذالک هنوز آثار شیخ به لحاظ مستریابی از بقیه مصادر ما به مراتب بهتره. شیخ در مستدرزاده خیلی دقیق ریشه های میشه. خب شیخ وقتی تفسیر می‌کنه احمد بن محمد بن عیسا چه دغدی داریم که ما توش دستکاری رو کنیم بگیم چیزی شده این بین ان بوده بین شده بوده. و معید این مطلب این رو جلد ششونه در جلد هفتم تحضیل در جلد هفته یه جلد بعد از این در صفحه 135 همین حدیث رو اوبرده به احمد بن محمد ابن ایسان هم نداره احمد بن محمد ام ابرقاسم سیغل قاد کتب تاره همین زیر رو اوبرده یه دو بار که میشه که شیخ اشتباه کرده و یه بارش قبول کردید یه نصا اون چه که ما الان مشکل داریم این از که مرحومه شیخ قدس الله نفسه به عین همین حدیث رو دو مرتبه در یک جای دیگه اینجا لن صدیس در صفحه یکه اونجا صدیسی و هفت به عینه از احمد بن محمد شروع کرده خب چرا به جایی که به شیخ نسبت اشتباه و و زیاد و دقت رو بدیم دقی قد شیخ کتاب کافی پیشش بوده ایشون وقتی به کتاب احمد مراجعه کرده در کتاب احمد محمد میگیسا نبوده نه عمله اجتهاد می‌کنه اضافه می‌کنه هنو فهمید بگیم دو مرتبه شیخ در دو جای جلد در دو جلد کتاب باز اشتباه فقط کاری که شیخ کرده در یکی نسخه احمد بن محمد در یکی نسخه احمد بن محمد نییسه هیچ فرقی نمیکنه همین همون اوجیان خواصبی ابو جعفر ابوبدی هم در وسط ذکر نشده خب به جای اینکه ما بریم درست کلمات شیخو بفهمیم چرا بریم از این اجتهادات عجیبه علی بگم این خود نبوده که اصحاب ما بو تا تائب لقب دادم و به نظر ما این کاملا دقت شیخ میرسید با یه بحثی داریم ایده از اون هستن یه عبارتی میخوان به نظرشون جور در نمیاد تصویر قیاسی میکنن نسا مثلا یه احمد بن موسیان او به نمیشه یک قرانته از کروشه باز میکه تو چشمه محمد بن اجا شیخ از این کارا نکرده همونه که دیده و خودش نکرده شیخ به جای دقت به جای تصیح سیاسی در کافی دیده خوب. که ان محمد بن یزید در کتاب تصفارم محمد بن یزید بن و لذا به نظر ما این نشون میده دقت شیخ رو اشتراف این تصورتی که کنه که شیخ با کمال دقت و با کمال امانت اون متنی که در مستر بوده برداشته برای ما کرده نه کلمه کم کرده نه کلمه زیاد در اون متنی که ایشان دیده نام محمد ابن عیسا نبوده حالا فرصوی در کافی هست باش در اون متن نبوده حالا این نبودن چه منشه ای داره؟ این دیگه کار شیخ نیست کاره رجالی هاییست و علمه هاییست که زیاد بعد بررسی بکنه اگر واقعا مخلد ابن موسای رازی همین اول قاسم باشه خب بعید نیست که این استفسا رو مرحوم احمد ابن محمد ابن عیسی هم ازشینده باشه چه مشکل داریشون در قبولو در ری بوده؟ مشکل نده خیلی؟ بعید نیست مرحوم احمد ابن محمد ابن عیسی در کتابهای خ و هم احمد ابن محمد ابن راوی کتاب محمد ابن هست بگر سرز اون کتاب توقیات یا کتاب استفتاعت رو ایشان از عویدی هم نقل کرده ایش با هم تنافی که نزده استفتاعت از اون آقا گرفته در کتاب خودش رو کتاب توقیات یا کتاب مسائل و رجال یا استفتاعت را هم از محمد ابن ایسا شمیده ولذا مرحوم کلینی در حقیقت از اون کتاب نهار کرده مرحوم کلینی از کتاب توقیعات یا مسائل رجال محمد ابن ایسا عمل کرده طریقی ایشان به اون کتاب محمد ابن یحیی استاد ایشان ان احمد ابن محمد ابن ایسای اشعری از اوهید این طریق است به کتاب شیخ قدس الله نفسه همون روایت کامل‌تر از راه صفار اونم از کتاب ابی دین ارشده. چه مشکل داره؟ از طرف دیگه خود مرحوم احمد بن محمد میسا که از بزرگان خوب از اجلای اصفاده در سفری که به رای داشته یا در سفری که این آقا از رای آمده قوم این استفتار رو برای مرحوم احمد نقل کرده. ایشون هم به اعتماد به او در کتابش آورده. خب این جمع اینطوری چه مشکل داره؟ چرا بگیم این کم کرده؟ اون آقا زیاد کرده؟ تسخیف شده؟ بین شده؟ مادام دو مرتبه در کتاب شیخ آمده و در هر دو مرتبه اختلافی نیست الا در یک جا احمد ابن محمده در یک جا احمد ابن محمد ابن ایساس دیگه اختلافی با هم نداره؟ این یک مطلب یک مطلب دیگر رو من ارز کردم گاهی در اون بسادر اولیه تعلیق بوده این تعلیقی ایک عمر متعارفی بوده شیخ قدس الله نفسه نیامده اون تعلیق رو هم نقل بکنه این تعلیق چی فصلی در کتاب احمد ابن محمد ابن ایسا که شیخ به او ابتدا کرده در کتاب احمد ابن محمد ابن ایسا اینجوری بوده فصل کنال یه حدیث بوده محمد ابن ایسا یعنی ابیدی ان ابل قاسم سیغن یه حدیثی نقل کرده باز آمده بعد از او گفته و ابل قاسم سیقل قال کتب تو این استلاحا تعلیق میگه این در کتاب کافی آنان هست مثلا کافی میگه علی بن ابراهی و ابی ابن ابی عمر ان حماد ان الحلوی بعدش میگه ابن ابی میگه اول حذف میکنه. مثلا میگه علی بن ابراهیم ان حماد ان عبی ان حماد حماد بن ایسا ان حریز ان فلان حدیث بعدی میگه حریز اون صدر سند رو دویده اصطلاحا یا بایدش بلاغ میگن بلاغات میگن یعنی بلاغ بیهی الا یا تعلیق میگن اصطلاحا احتمال داره در کتاب احمد تعلیق بوده بوده قدر <تصحیح> الان کتاب احمد در اشتیار ما نیست <تصحیح> قتاب بوده ها این دومی هم عکس برو بوده هنال در کتاب او حدیث اول بوده محمد ابن عیسیان عبدالقاسم حدیث بعدی هم بوده اون وقت احمد تعلیق کرد چون تعلیق انظار فنی در رجال در حدیث مقبول سنیان داره بحث در دراسات حدیث مطرح شده تعلیق نیست مشکل نداره دقت کنید سو حدیث بعدی گفته اول قاسم سیرع حدیث سهو بوده اول قاسم یه تعلیق کرده بعد محمد بن عیسی این چه مشکل داره شیخ احمد بجای اینکه دخل و تصرف بکنه دقت کنید مرحوم شیخ هم رو... کتاب احمد چیه مقابلهش اول قاسم سیگر از برون پس التضامه به این که در عبارت شیخ صحبی شده شیخ در اینجا سند رو خراب کرده یا تصحیف شده احمد ان محمد ابن ایسا بوده یا احمد ابن محمد ابن ایسا ان محمد ابن ایسا بوده تا استاد این رو عقیده داره که اینجا شده هیچ کدوم از این حرف رو درست نیمه یک یعنی احتمال بسیار قوی هست من احتمالم ترجیح میدم بعد می که اصلا خود احمد مستقیم از ابو القاسم سیقل شینده باشه و در این حال کتاب توبیات محمد بن عیسر هم نفی کرده پس با این تحلیلی من دارم چه تحلیلی من خیلی مش اصرار میکنم چون این تحلیل تا حالا گفته نشده مثلا صاحب های این مقاله اتهامات شده روشن شد که اصلا مروون شیخ با کلی دو تا مصدر داره هم. مشکل شد. مرحوم کلینی این حدیث رو از کتاب توقیعات یا مصادر رجال محمد ابن ایسای و عبیدی یخینی نقل کرده. نسخه ای هم که در اختیاریشان بوده نسخه صحیحه. ببینید ما چند بحث میکنیم. یک آیا محمد ابن عیسا ثقه است یا نه؟ طبعا ما در رجال در بعضی از موارد میس نه اصلا بعضی از موارد میگیم مثلا فلان شخص موهومه. این بحث مثلا شخصی به نام فلان وجود خارجی داره یا نه یا سه این وجود خارجی نداره این حالا اون بحث را الان ما واردش دویه دو آیا ایشان تعلیفی داشته یا نه تعلیف او بین اصحاب ما ثابت یا نه سه این تعلیف اگه در اختیار کنینی بوده نسخهش صحیحه یا نه در این که محمد افنی ایسا است و جلیل و تعلیفی هم به نام طبیعات که مرحوم نجاشی اسمد یا مصادرجان که من عرض کردم اینا همش ثابته نسخه کلدینی هم صحیحه نسخه ایشان از این تبیقات نسخه الفیلی چون تراسل استادش محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن یسای اشعری قم که شیخ الا اشاعره در زمانش و مرجع حدیث در زمانشه از اون نقل کرده در هر دو به‌ذرب و استلافی آقای نما ادعی از علمای شیعه دارین صحیحه اعلیئی صحیحه اعلی است که تمام صنعت اضافه بر وصاغت عدالت در جلالت شأن یعنی جلید و القدر بزرگان بزرگ از بزرگان منفقت از و ادان و در اینجا این طور این نسخه مرحوم شیخ کلینی و اما نسخه شیخ توصی ایشان دو بار نقل کرده یک بار از کتاب صفوا که از, از کلینی اصلا از راه نقل نمیکنه خیلی کم نمی. اینا یعنی اصلا یه راه هم از کتاب احمد بن محمد بن عیسی شون او در کتاب احمد بن محمد بن ایسا حالا این کتاب که میگن نفتزا کرده دقیقی نیست اینه عبارت اجمالیه بگیم میخواستیم توضیح بدیم که از این مطلب رو توضیح بیشتری بدیم چون چه تواجه نشده، من ترده این توضیح بیشتری هست حالا از این کتاب یا, یا یک مستر مشاوهی در این کتاب دیگه واسطه بین احمد و بین اول قاسم سیغل وجود نداره و محشلی هم نداره. استفتایی بوده یک نفر از علمای بغدال آمده خوب یک نفر از علمای قم استفتایی چه مشکل خاصی نداره مشکل مشکل هم نداره, مشکل هم نداره. چه مشکل داره بگیم هر دو درسته فقط درمان به چی شد یکی از یک مصدر نه یکی از یک مصدر پس اختلاف برگشت به مصدر شیخ و نجایی باید کله دیگه. دیگه زیاده و نقیشه و تحریف و تصیبه این من كريش والله <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم